امروز ما شما درباره فرهنگ مردم افغانستان فرهنگ مردم افغانستان و مقایسه آن با فرهنگ اسلام بسم الله الرحمن الرحیم لله و صلوات و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم خوداشت خب ما شما از فرهنگ صحبت میکنیم فرهنگ چی را میگن فرهنگ غالبا خلاصش تعاریفات زیاد طرفه که علما روی بار زیاد نظریات مختلف دارن خب خلاصه همشی چی است که فرهنگ عبارت از مجموعه داشته است که انسان ها در طول تاریخ خود در قسمت لباس در قسمت رواجها در قسمت بعضی از مجالس و محافل و برنامه ها چیزایی که دارن این کلوشه ارتباط میتن با فرهنگ مثلا هر کسی لباس خاص خود داره روزای تاریخی خود داره اید داره مراسم دارن غذاهای فرهنگی خاص خود دارن بعضی از عادات و رواج و کلتور و انانات خود دارن در مجموع همه از ما فرهنگ یک کشور میگیم ایناله اینجا باید ما که وقتی ما فرهنگ داریم این فرهنگ ما چقدر سازگار است با شریعت و احکام اسلام با قرآن عزیب و شام هدایت پیغمبر صلی اللہ علیہ خب وقتی که آیت شریف نازل شد که یا ایوها الذین آمند خلوف السلم کافتا ای کسانی که شما ادعای ایمان میکنین داخل شبین در اسلام بشکل شکلی مکمل سلام آنها از که اسلام قابل تجزیه نیست و اسلام وقتی که دینی است که خدای از بر ما بیان کرده که الیوم اکملت لكم دیناكم و اطمانتوا عليكم نیمته امروز بالا شما بر شما دینی تکمیل تکمل کردیم و نعمت های خدا بالا شما تمام کردیم دین مقادی اسلام دین کامل است بناآن وقتی قرآن ما را میهه که در دین اسلام کامل داخل شدیم و دین اسلام تین کامل است پس موضوع فرهنگ چی باید بکنیم و یک آیت شریف نیگه که یه جدتاً ما رو تحدید میکنن در یهود صحبت میکنن وقتی که درباره یهودی ها صحبت میکنن که یهودی چی عادت داشتن افتا اونو به بعض الكتاب و تکفرونو به بعد آه شما ایمان میارین و بعضی از کتاب و بعضی دیگهش کافر میشین این در حقیقت قصه یهودی ها رو برمای میکنن خطاب براز اونا بود که اونا بعضی از احکام که خدای عزواجال توسط تورات و توسط موسیٰ علیه السلام بیان میکرد اونا یک نوع دین خدا تجزیه میکردن در جای که منفعت شانی بود مطابق رواجشان می بود مطابق کنcillرشان می بود مطابق عناناتشان می بود مطابق خاصه هایشان می بود و رو بسیار دقیق به وعمل میکردند. ولی در بخش دگیش و تکفیر اونو به بعد اما در بعضی از احکام دگی که مخالف خواهیشات از اونا بود مخالف نظریات از اونا بود مخالف انجشه هایشان بود مخالف تقلید و کنcillر و رواج از اونا بود و نفس از اونا او را نمی پذیرفت باز او رو ترک میکردن مثل که ایچی حکم نباشه خداوند متعال جل جلوهو بیان کرد کسی از اونا را که یا چی جزا دیدن و برای ما همه یه که اگر شما عین روشی را که یهودی ها تدبیق میکردن شما هم تطبیق بکنید، شما با عین مصیبت گرفتار میشین افرطالی اونا و بعض کتاب های شما به نصف کتاب ایمان میرین و تکفرونه به بعض و بعض دیگه شد ترک میکنین فما جزاء ما یفعل ذالکه پس چیز جزای کسی که کاره میکنه خداوان میگه میکن دو دا جزا دارم الا خزین فی الحیات الدنیا در دنیا خداوان ایر خوار زلیل میسازن و یوم القیامتی ردون الى اشد العذاب و در روز قیامت بس اخترین عذاب مطلع میشن یعنی اینیست که و خواری که خداوند نصیب در دنیا میکنه این کافی برش باشه بر زندگی دنیا و ببینه در آخرت باز من خدا میبخشنه و یوم القیامت مردون الى اشد العذاب و در روز قیامت بسخترین عذاب اینا مواجه میشن که عذاب دوزخ است خب امروز ما بیم در قسمت فرهنگ خود ما مردم افغانستان که در بسیار کم صحبت میشن به باره عزیز صحبت بکنیم و ما فکر میکنم کنم فرهنگی که ما شما داریم شاید دو سی درس از ما بگیره امروز کوشش میکنیم چون زیاتر کسایی که در مجلس اشتراک کردن جوان هستن هستند و اکثرن کسایی هستند که شاید دامن رغد داشته باشن آروسی داشته باشن پدرای مسلمان باشن دبر ازی رواج هایی که ما در آروسی و در شیرنی و در نمازتی بی گافا داریم صحبت دا بکنیم چرا که این موضوع بسیار خطرماک است امروز ما در افغانستان مشکل اساسی مردم افغانستان در چی هست؟ اونمو مشکلی که یهودی داشتن ما داریم اون مشکلی که یهودی داشتن ما مشکلی از یهودی که شاید چند قدم پیشتر داشته باشیم ولی متوجه نیستیم ولی مشکلی است که گناه میکنیم و در روز قیامت محاسبه خواد شدیم و در جزای خداوند داخل میشیم و خواری و زلط دنیا نصیبی ما و در روز آخرت هم بسخترین ازاب و اطلاع خواد شدیم ولی بسیار وقت بیخبر استیم و حتی متعصفاند بسیاری از علمای ما که بسیار ادعای حق میکنن می کنند عزیز یا نمیگن یا گفتن نمیتونن یا به خاطر که کس خفه نشه یا به خاطر که گپ بگه، بگه، بگه، بگه، کس تج نکنه و ای که بعضی از مردم هستن که حق نمیپذیرن و آلمی که برای زنا گپ حق بزنه در مقابل از رو قد علم میکنن حتی ما خبر شدیم که وقتی گپ حق گفتن مولای صاحب مجرد که از خود بی خود خلاص شده ملک قریه و خان قریه و ریش سفید قریه خسته خسته و کته چند نفر دیگه و دستاجی گرفتن و گفت بس تو جوابستی دیگه در ما نماز ندید. اینال ما دو طرفه مشکل داریم از خاطر ما میگیم به خاطر از اینکه من شو کردم الحمدلله هم ندارم کس من را از امامت بکشن کس برای من هم روی نمی کنه که دکسرای دا میکنه داخل به روی کنه کس کی کون امروز مرا کلام احترام میکنه احترام نکنه ولی حق باید گفته شود. و حق هم میگیم و کس که اعتراض هم می ما برش میگیم که تو اعتراضت خدا را خفه می و مخلوق خوش می چرا ترا کارت. ولی ما مخلوقات خفه می نزدیکترین دوست خدا خفه می سازیم. و سرش برش می که این غلط است تا در روز قیامت دستو نفر به خن مانشن. ما مسئولیت داریم در روز قیامت تو جوان تو ریش سفه تو پدر تو پسر تو دختر تو مادر تو خواهر نه از یه خنم ما, ما کم میگیری که خب وقتی که ما تمام روزگپای شما را گوش میگرفیم کنان روز گفتی بر ما که اینی حق از اینی باطن ازی خاطر ما مجبور است بگوییم خب از کجا شروع میشم اول در قسمت اختیار همسر است در قسمت اختیار همسر برای جوان ها پیامبر صلی الله علیه و خطاب میکنه که تو جوان مسلمان وقتی که همسرت را اختیار میکنی تانکه المرته لاربعن یعنی یا کسی همسر خود را اختیار میکنه به خاطر چهار علت به خاطر مالش که از یک فامیل مالدار باشه و یا به خاطر حسب و نسبش که از یک فامیل خاندانی باشه و یا به خاطر جمالش زیباییش که زیبا باشن به خاطر دینش غالبا ازدواج وقتی که صورت میگیره بخاطر از این چار این چار چیز مردم در نظر خود میگیره لیکن تو جوان مسلمان پیغمبر خدا بر تو چی خطاب میکنه میگه فضل فر به ذات دین تربتیه دار میگه تو کوشش بکن که در وقت اختیار همسر باید سر اختیار بکنی که خانواده با ایمان هستند و دختر با ایمان است و اگر دختر است پسر با ایمان باشه و حدیث شریف و روایت شریف میگه که اطیبات و والخبيثات للخبثین ایناله ما با طرف مالش زیاد سوال کنم پیغمبر ص ص اگر یک دختر میلیاردر باشه و در مقابلش یک دختر فقیر باشه، دیندار باشه، دختر فقیر اختیار انتخاب کن، اختیار نکن. اگر دختر زیبا باشه، بدین باشه، میگن اون رو انتخاب نکن. ببین که کو زیبا نیست، زیباییش متوسط است، اون اختیار کن. اگر یک است که از خانواده‌های بسیار بزرگ است، ولی خانوادیش بیدین است، گمراست، سفر اوراق نمی‌کنه، در خانهش حکم قلاوان تبیق نمیشه میگن اون چیز نکن. از یک خانه متوسطه که متدین باشه از اوج تو همسرت اختیار کن. بسیاری سری کسانی که یافت نمیشن. یافت نمیشن او تو فامیل خوب تو متدین با ایمان. ما همینه یافت میشه. لیکن کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز. باز. وقتی که یک جوان پاک باشه در مجالس پاک و تقوی بشینه اطمان در مجالسی که اشتراف میکنه با دوستای پاکی که داره اطمان نصیبی از فامیل پاک میشن اطمان طیبات و خداوان برش پیدا میکنه چون تو جوان استی و پاک زندگی میکنی خداوان متعال جل جاله بر تو راه پاکی را پیدا میکنه همسر پاک پیدا میکن از این خاطر کوشش کن که خودت پاک باشی وقتی که خودت پاک بودی اطایبات و طایبین حکم خداوند است و سنت الهی است که همسر پاک دختر پاک نصیب جوان پاک میشه. از این خاطر تو خودت پاک اما بعضی جوان هستن که تمام عمر خود در گمراهی در گناه در دیدن فیلم های منحرف وقتی خود در جاهای بد سپری میکنن با باز میک و بازباد ولما ای که همسر پاک داشته باشه خداوند خود گفته که آن خدا خبیز ساختی خبیز چی است که بگناه مسروف هست بنار نصیبی تو چی میشه اطمان خبیزاتو للخبیسین یک نفر میده در در بین اوتل دخترای مردم از سعیز میکنم بگیم برای خود همسر پیدا میکنم در محفل رقص بر خودم سر پیدا میکنن در پوانتونو پوانتون در کنچه مکتب و در سر بازار عاشق میشه و بازفاد با از این که زندگی حفیف پاک اختیار میکنم نمیشه. از کسفت دانی کس میتونن که غذای پاک بگیرن از باطلدانی میشه که ورق سفید میگیری حتما وقتی که در جای چطن رفتی اون رو خود هم اما انسان مسلمان وقتی که از آغاز تواجهش به طرف پاکیس خود پاک نگاه کرده و در محافل پاک شیشته حتی من برش فامیل خوب با پاک پیدا شده با سال گذشته در که از دوستای ما ردیم به خاطر فیصله آروسی دخترش اولین پشنهاده چی بود که آروسی دختر دخترم در اوتل نکنیم دخترم آروسی دختر ما ساز نبیاریم دختر ما دخترمه با رایشگاه نبارین لطفا فلم برداری نکنین این خواهش های پدر دختر بود پس ما نگویم که یاف نمیشه یاف میشه ولی ما کهی جای پاک گشتیم تا که خداوند بر ما پاکی رو نصیب بکنیم و پیغمبر سلام برای پدرها چی میگن؟ عزت ابي و هر رضي الله تبارك و رسول الله صلى الله عليه و سلم گفت كه اذا خطب اليكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه اگر بر شما یک کسی خاص کار شد که از دینش و از اخلاقش رضایت داشتید یعنی اگر یک جوان پیش شما آمد و می خواست که با دختر شما ازدواج بکنه و شما در او دو خسلتی یافتیم که هم دیندار بود جوان دیندار بود و هم با اخلاق بود فزا وجوه پس شما باید او را در قسمت ازدواجش کمک بکنیم این لا اگر شما یک کار نکنین تکن فتنه فی الارض و فساد عریف باز فتنه بسیار بزرگی در زمین میشن و فساد بسیار کشالدار در کتاب الب ترمذی روایت کرده و ادمشکات شریف حدیث 260 صفحه 267 در مشکات المسابی حدیث شریف ایناله به قدری که مانع ازدواج دخترش میشه نه به خاطر اینکه ای جوان بد اخلاق است نه به خاطر که بدین است بلکه به خاطر ای که این اقتصاد ضعیف داره، به خاطر اینکه ای طویانی ای درست دادن نمیتونه ایناله در فرهنگ موشمایی است که بسیاری مردم ها میگن بسیاری کسا میگن که اگر ما دخترو خود با مصارف کم مصرف بکنیم نکاش بکنیم یا ریسه بکنیم بازی قدرش کم میشه ایناله این ای فرهنگ جاهلیت است که این از قبل از اسلام در افغانستان مانده که اگر دخترتر تویانه نگرفتی سرش مصرح زیاد نکردی یا روسی بسیار مجلل نکردی اینجا قدر دخترت کم میشه این را شیطان میگه و فرهنگ شیطانی جاهلیت قبل از اسلام در افغانستان میگه و به با شکل انعنه برمون مانده آیا این انعنه را اسلام تایید نکره؟ نی صد صد مخالف دین مقدس اسلام است چرا؟ در صفحه 268 مشکات المسابيح درباره عایشه رضی الله تالان هر روایت میکنه از پیغمبر سلام که میگه ان اعظم النکاح برکتا ایثره ماونه رواه البیقی في شعب الايمان میگه پیغمبر سلام گفت که نکاحی که بسیار برکت داره اعظم نکاح این اعظم نکاحه یعنی نکاهی که برکت بسیار زیاد داره کدام نکاه هست برکت پیش کی پیش خدا پیش پیغمبر خدا وقتی که نکار خداوند، درش برکت میپرده ایسا روحون با اونتن که مسارفش بسیار کم و تکالیفش بسیار کم باشه محرش بسیار کم باشه ولیمش بسیار عادی باشه جوان قرضدار نشه از طرف فامیل دختر سرش ششار نبیه، در این نکاه خداوند برکت میپرده اما نکاهی که باز های شیطانی به او حاکمیت داره و پدر و مادر عروس به این فکر استم که اگر ما دختر خدا تویانست نگیریم یا کم بگیریم باز او برکت نمی باشه یا او ضعیم این مادر و پدر باید متوجه باشند که دایی این خود ضد گفه پیغمبر خدا عمل کرده ضد قرآن عمل کرده چرا؟ در دین مقدس اسلام تویانه اصلا وجود نداره بعضی علماء میگن که تویانه گرفتن مثل غصب هستن و بعضی هم میگن است به نوع ان عبدوش حرام شد شما میرون پیش یک نفر کارتان بند است و کارتان قانونی است و اون مدیر دفتر یا قاضی که در مجه هست او برد نگه برو دولک رو پیه بیار بازمینه رو میکنم در حالی که دولک رو تا در مقابل چی؟ ایخ وظیفه تو است وظیفه است این حال ما میگیم رشوات شوید میخورده شوید خور است اینال پدره که یا مادره که یا کاکای یا برادره که میگه اینمی دختره برودم در مقابلش سه لگرپیه تویانه بیر والوار بیر و پشتو والوار میگن و با فارسی تویانه میگن و در زبان عربی و در قاموس اسلامی در قرآن و در سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی بنام والوار و تویانه وجود نداره وجود نداره خب بعضی کسا میگن مهر است بله در قاونس اسلام مهر وجود داره لیکن مهر آیا از طرف پدر و مادر دختر یک ماه پیش شش ماه پیش در واده نمینه این وقت دیگه مهر نیست او تویانه شد خیلی مهر چیست مهر اونمو مقدار پولیست که شوهر بر خانم خود در وقت نکاح این میکنه در وقت نکاح مهر تعیین میشه و این مهر که است, است بر رضایت جانبین است وال المهر علی ما ترضیه مهر بر رضایت جانبین است بر رضایت داماد و بر رضایت اونم عروس یا وکیل عروس در محفل نکاح مهرش تعیین میشه و کمترینش بهترینش است کمترین مهر بهترینش است با اندازه‌ای هست که نمی جوان میتونه در محفل میگه من میتونم برای خانم خود مثلا 10000 افغانی مهر بدهن 5000ش حال برایش یا 10000 افغانی ش حال برایش میدن 10000 افغانی دیگه چه برای آینده برایش میدن حالا اینی معرف که باز اینا این جوان برای همسر خود میدن یا به شکل عاجل میدن که اون مهر معجل میگن و یا به شکل عاجل یعنی در آینده میدن که اون مهر مؤجل بمز میگن یعنی تعجیل داره. چا این مهر حق دختر است که باز شوهرش برای خانم خود تسلیم میکنه بازی خانم حق تصرف داره بازی که گرفت در بکس خودمان، باز حق تصرف داره که باز او را دلش پس به شوهر خود میبخشه دلش خودش مصفت نیکن به هیچ کس نمیبخشه خواهر در بکس خود نمانه وای یکی که مثلا اینمی پوله با کدام ازای فامیل خود میاد از پیش یا تو زار شدن اینی رو مهر میگه که حق خود عزیز باز کامل تصرف داره دلش پای سی خود چی میکنه او حقی دختر است اما اینو سی که پدرها یا کوکوها یا مادرها باز بعضی مردای چالاک چی میکنن بعضی مردای حرامخوری که گفت خدا فرودکاری میکنن میگم بخود تو یارا نگرفتم مادرش گرفت خودش خدا پای خدا دور میکنه سکرته خدا پیش میکنه اولا در اقرب مثلا خون با مزاجش رو که کنال مدلک نگویم به مردم باز شوارم خفه میشه و چطور است چنان باز میگه من خود نگرفتیم چی گرفته؟ و هرم مادرش گرفت این اینجا برادر دیگه اب خلاس نمیشه رئیس فامیل خود تو هسته خانمت نمیتونه بدون تو؟ یک کاسه شروع با یک فقیر روان بکنه و چطور امیدونه که دوله اگر پتر تویانه رو با خدا فریبکاری نکنیم با دین اسلام فریبکاری نکن حرام میبوری بگوی عرام خور اصلا بگوی که عرام خوردیم بعضی کسا نگه شیربه هاستی تویانه آیا تو شیلی تو خیلی وقتی که بچه بزن زن میتوی چند شیرباه هاشه میگیری وقتی که شیرباه هاست خب باید ازار دویش باشن بنامتی در حق دخترت جنایت میکنی چرا این پدره که دلک سیلک میگیره این دخترم میفروشه و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم میگه که خداوند متعال جل جالهو گفته حدیث قدسیست سلاستم انا خسمه هم یوم القیامه سی سایفه مردم است که من دشمن شان در روز قیامت یکی از این مردم ها است که انسان آزاد هم میفروشه و پولش هم میخوره من با حرم فا اکلا فمنه هم کسی که انسان آزاد هم میفروشه آیا دختر تو آزاد نیست؟ آیا ای تو آزاد نیست؟ آیا ای خوارزاده یا برادر زادی تو آزاد نیست که که می فروشید ب توی بهنا شیربه هاجناییت در حظو میکنید بنام ب که اینجا تو انسان فروشستی و دختر فروشستی و ع دوسی لگر پیله که گرفتی اگر به امرایاضزی به خانه خدا برری، به خانه خدا بری به حج خانه خدا بری و تو بگی لبیک خدا میگه لعنت خدا سره تو حرام خورد تو با طایسی حرام میخوای که میخوای که به حج خانه خدا بری تو ضرب کار اینو سرش لعنت خدا نازل میشه بعضی کسای دیگه استدلال میکنن و استدلالشان به اساس فرهنگ است و بعضی از کسایی که به حکم خدا سر نمیارن و میگن که ایمان به نصف کتاب داریم و به نصف دیگه ایمان نداریم افت تؤمنون به بعد الكتاب و تکفرون به بعد کافر میشه و بعضی بگی چرا تو آیت خرآن است و من لم یحکم به ما انزل الله در صورتی که تو حاکمیت صلاحیت داشته باشی تو پدر هستی تو وکیل منطقه هستی تو خان منطقه هستی تو رئیس فامیل هستی و اینج ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون سي آيتي حتى إنسان بفاسق مشى ظالم مشى وحتى بكفر مي رسك okay. حكم خدا را إنسان بفاما وإيكارا ناكنا چي دلل برادر عزيز موخی پیسه را که میگیرین ده جیب خود نمیپردیم مونگ دا پیسه چه اخلو پخبل جیب که خونیا چه و مونگ دیتای ضرورت هم ندارو تیاج هم ندارو مونگ دست خاندانی و دست لاری و دست امکانات لارو چه هیت دیر مونگ دی در غیرت ور خلق, خلق. چه غیرت لاری؟ دادی غیرت در دا چه در خلق ور پیسو نه غیرت ایس چیز در نداری غیرت افغانی میدانی این داریسی بازمشنستی که غیرت تیزی چی قدر است چی میکنم؟ مصحبی پیسه تویانه رو میگیرم باز برای دخترم چیزای میخرم دیک میخرم و یخچال میخرم و ظرف نکلی میخرم و چاجوش نکلی میخرم و پلسکو برش میخرم و سیط فلانی میخرم سیط فلانی میخرم و برای داماد بازدریشی میخرم و برای پیانتنبان میکنم این غیرت شد؟ اول یک نفر میام هر بزور از یک خانم ها کم بگیره بگی 2000. تو به 2000 بابا ندارم برو قرض کن. خانم مجبور قرض کن. وقتی میگه یعنی رز به 2000 بنا که این سه بینی کالای لوکس رو خریدیم بینی تلویزیون یک تیینی پیرا دی تومبونا تی نیان گوستاگت یا سوجا خرید یک 500 شون دجی بخزدا کباب خوردن. من خدا خرابت کنه. خدا تباید کنه. خدا هلاکت کنه. امی کالای خودم خوب بود نمی خریدی. خریدی من خریدی تو مرا بودی قرصدار گید دو از عرفه تمام روز من تخت تخت تخت همون چطور شد و من ندارم باستو رفتی بر من درشین لکش خیلی برد باستو رفتی برد خانه ایش آباد خانه خراب خانیش خراب چرا که اگر ایزنای فاسق و فاجره که در یپا خانه آبادی میتن در حقیقت خدای عزوجل ملائکه های خداوند، برای خداوند، دوستای خداوند نگه خانه تو خراب که تو یک مسلمانه در قرض انداختی، در وام انداختی، حلال سرش مشکل ساختی، و این جوان بسیاری سری جوان ما امروز در افغانستان مبتلا به زنا میشن. تا کنفتناتن فالارض و فساد کبیر تنمت تو, تو پدر از از ترس روز قیامت، در روز قیامت از یک یک از این جواب که تو به خاطر از این بیشتری که اساس جوانانش دواجگ کردن نمی‌تونن. چرا؟ چرا که اون که خدا خوب مسلمان میگیره خوب سایب کار، عموماً چی می‌گه او؟ چپان چی می‌گه او؟ سایبریش چی می‌گه او؟ کالنکاری چی می‌گه او؟ آدی نفلی چی می‌گه او؟ آدی فرضی چی می‌گه او؟ ای این کل لذیذ قابل لذیذ که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف پرسان که لذت‌ساب کردم، گفت که که یاس، گفت میزکن کیس؟ پرسان پیرامد خدا که یاس می درهم و دینه هم ندارم نه نه نه مسکینی نیست مسکین از قیامت کسیست که حج هم داره نماز هم داره روز هم داره اعمال نیکام کرده ده ختم هم کرده ده, هم کرده ده، سطح اول مسجد هم این این افر ششتر لیکن یکی رو دشنام دادن دیگره بد گفته سر دیگه گی کرده مال عزیزه خورده عق حضوره خورده در روز قیامت هر کس استفاده استاد میشه در قطارش و میگه پروردگاره تو خوزات عادل استی با خدا داماتا در سر صفح خسرها امشالله و تعالی استاد میشه و میگه مگه پروردگاره اینمی ظالم سه لگره پای سه مره گره سر من وزار در اوتل آروسی کرد مردم دول میزدن مجاب قرضاره چی بگویم قطع کار که شش منزوله بردم که که پاره میکرد قلب من رو میکرد چون من راضی نبودم بزور سرما من تحمیل کردن خدای ای خساری که بزور ای خساری که بزور من تحمیل کرده و, و, و, و, و ای خساری که دو ست نفر در اوتل سرما سر من نام دادن و ما به توانیه نداشم که پای نفر در اوتل نان بتم پنه نفر توانیش مندشم که در اوتل نان بتم میخواستم که ازدواج حلال بکنم میخواستم ازدواج حلال بکنم میخواستم که از حرام دور شوم. اینمی خسره من بازور دوست نفر قومای خداور سر. چند تانساه خداوات که مثل چی دارم مسیالی دارم مشاریکی دارم قالو چه دیگه غیرت خود میران از جیب خود مصرف کن سید بزر سرما صد دو نفره، را سرما صد دو نفر دو دو دو دو دو دو نان داد خدای دوست دیسی ما به نام گرفت خانه و قالی هم داشتم فرش هم داشتم ما یک خانه دیگه 100 چیز اضافه یا کود کرده ما بدل بدل هم خریده رفت سید با کاغذا درش داده آوردیشن یخچال چکن خراب داد جونیش موتورش کردن اگه اال خرچگر از کسی میمان بود حاتم تایی شدن آسان بود اوندی خوب بالا آاشیدشا منک مانده نباین و س بهتل آممدیم خوش خوش آمدین بهختتر فروش ساید با خیلی می ببینیم آ فروختی یا خو کردینه ما دو س نفر آول کردیم ا باید ما دینو در هر جای تدبیت بکنیم ای جوان که مبتلاب از زنا میشن و او دختر که مبتلاب از زنا میشن و او طب عدلی که هر شو بزارش میتا داکترهای شما پرسان کنیم یعنی دکتر داکتر طب عدلی به من میروی که جبتان در باری طب عدلی بگیم داکتر ستیبی بر ما یک سات در باری که در افغانستان است هزوی طرف دشمنای اسلام کوشش میکنه که تلویزیون های رنگ آرنگ رنگ ما بانند خوشش که راژی های رنگ آرنگ باشند برای ما وقت نتا که دین بفاهم از این طرف اینی نفرهایی که مسلمان هستند من از بیگانگان هرگز نمالم که هرچی به من آورد کرد آناشناکه ولی خود دشمن از او ولی تو دوست چرا تو دشمن از جوان هستی نمیخواهی نمی که ازدواج بکنه دشمن دختریت هستی که بیچاره مثل غلام و برده ورده و خانه کار میکنه و برش میگه یکی پدرت پهیم لگرفته پدرت چار لگرفته که ما قرزار شدیم خدا تو رو علاق کنه خوصیش توام رو سرش دنگ میکنه که از تو تباه هستیم از از شینی خوری تو ما تباه شدیم خدا پدرت خیر نته و 24 سال است. و تو ایوازی که حکم خدا و حکم پایران برای خدا رو بری این مساله تطبیق بکنی به ایواز زید میشه میکنی و چی وقتوش هستی که و الان اصلا تذبیم ایر بر بر بر بر بر تذبیم فرطم ای خود دین خوی نیست و ایوهاللزین آماند خلوف سلم کافتن کافتن خوب داره یعنی مکمل مکمل در کلش داخلشون الان تو در پانتون پا میری درش نیخوید و الان اصلا چار سمسر افتاد چند مضمون داشتم والا در دا یک مضمونش ست گرفتم در بگیش ست گرفتم در چار تاش ست گرفتم خب ده تا مضمون دیگش سه بکنیش سفر سفر سفر بخدا که شاید نامره که نفس به بکشی یکی بخوری در نوز قیمت اینگه در دروازه ها در مقابل هفتاد چند صوبه ایمان از یک یکیش جاب میتید صحیح است که نماز درست خانیده نماز یعنی صد و بر صد بردی در روزه صد با آفارین بردی در ذکر صد با آفارین بردی در حرام خوری در حرام خوری در حرام خوری صد بردن اینجا با صد پیش شیطان گرفتن در وقتی که در مجلس میشی چی که برای تویانه ناروا هست عبدی اقل گفت حق خوب بگو ظالم خدا ناترست گفت حق اخو بزرگ بعضی کساست که گفت حقا نمیگه مدیر عمومی شیطان شیسته و انوزم در باطل او را تشویق میکنه اگه قلب از بزرگ برادر عزیز ما را خاصی من ازش استفاده بزرگ اینمی نفر کسی ای نمیتونه را که تو نمیگیری همه قادر مصرف میکنی اینمی اوتا میکنی ولیما در اسلام هست ولیما هست لكن چه قسم ولیما است ولیما مگر قزای است که دامت به اختیار خود پخته میکنه پیغمبر سلام به ایک صحابی وارک گفت که اولی مولا و بشاتن گفته صحابی مبارک ولی ما بکو یعنی در آروسی چند افرد دوستایی حسابتی خسابتی مولا و اگر چی یک گزفند باشه. انال وقتی از اصحاب پیغمبر وقتی که امکانات داشتن یک گزفند خود داماد بدل خود زرف همه کرد آروس خیل در اسلام سرکست شرط مونده نمیتانه حتی اگر کارت از طرف آروس خیل آمد بسیاری علمان میگه اینمی قضایش خوردنش مثل که غصم کنی کسی یک نفر موترت درای استاد میکنن میگه چل سیر برنج بتیم میری که خوب نمیدیده میدام موترت هم نمیمانم خاصه بس نکایی درست و صحیح و شده ایست که باید نکا بکنی میگه چل سیر برنج میاری توی میتوند چل سیر برنج آوید توی خصف شدی برنگ اینال اینی قاصد که بزور از اون مردکت چل سر پرنج گرفته و پنج سیر گوشت گرفته و بیس سیر چوب گرفته تو را دعوت میکنه داروسی دختر خود چطور میری میروی نان از میخوری و چی گفته ادیقل از خود یک پرسان بکو ادیقل پرسان بکو بکو برابر این نانه که من میخورم خیر است از یکان مولوی سه فرسان که. اگر بازی مولوی تو را گفت فتواه دادت که بخو باز بخو گناهی دگردن از امون اگر او باز گفت که بخو بعضی ها میگه بخو اگر تقوه ها میکنی یکی فتواه ها یکی اگر او مولوی سه فرسان که های نمینان بخو, بخو جایز است یه استادی که گفته ای نمی فهمه و جاهل است و بی بیقل است و خدا هم است که جای گفار را پیدا کرده و این رواج را نمی فهمه و این چون کلتور را نمی فهمه و انانات را نمی فهمه سیست من جاهل من بیقل من آدان من تو با فتواه از اون مولوی صاحب بگی لیکن دست در روز قیامت در اخن اون مولای صاحب آلمه که داملاست یک مولانه داملاست دست دقیقتن اونو یخن از امون اگر تقوی میکنی و میخوای که حق بفهمیم ما که ولی ما در ولی دختر خیل حق نداره که تقییم بکنه و پدر که بزور سر داماد خیل دو ست سیست نفر میقابلونه که نشتک سند میگیره دو صد نفر در اوتل فلانی ما از ما دو نفر میشه باز تو دلت که هر قدر نفر خبر میکنی باز دل خودت باشه ایناله کسی که کار کاره میتونه این حق نداره این ظلم است، این خیانت است این مانع قرار دارده در مقابل تدبیق حکم خدا مانی واقعی میشه به نهان این پدر این حقه نداره اگر تو پدر مسلمان استی و ما همیشه در گفای خود میگیم که او برداره عزیز. شما اگر درست من رو مسجد کش میکنیم و اگر کسی از بسیاری کساست که در کابل و در کندوز و در مزار و در هیرات و در فلانجی از طریق سیریز در گفای ما رو گش میکنن ما گفای ما برای مردم مای که متحصب و فکر خود چید میکنن و میکنن ما شماش چل ما پدر پدرمیگم که مسلمان است نمیفهمه. با اون مادر که خدا را میخوای راضی بسازه و نمیفهمه، و تا امروز نمیفهمید، وقتی آموزشی بچه اول خودی اکاره کرد، میتونه خیلی زود بچه دوم، دختر دومی تیک برا نکند. دختری امید نگو. نکد مانی تدیق حکم خدا نشون چون جوان بچارن ازدواج کردن نمیتونه. وقتی که ازدواج نکرد، اونجا دشمن اسلام دانی داداری پیدا لباس سرکسی دیره برش میفرشو. سرک است. در هر جا که بره یک زانه پاید پیگه آیست که بخوریم مجبور باید در دقیق رقص ساید کنن این جوان مبتلا به گناه میشن جرم از جوان در کلیب تو هست تون تو مانه حکم خدا شدیم و تو کسی که سگه فیصله میکنی که اگر تا وقتی که 500 نفر نونتی ده اوتال تا وقتی که 200000 تومان نتی تا وقتی که 3 کی عربی نخوای تا فلانی نخوای باور تو تو نمیتم اینا می جوان از اینا روس تا وقتی که پیسہ پیدا میکنه همین 1 سالی اکویم سال, سال گناری که میکنه در سر تو هست در روز قیامت چون تو مانی ازی شدی ده غیر از اگه مسلمان بودی در زمان پیغمبر صلی الله و علیه و سلم چه قسم رواج بود یک صحابی عمره وقتی که دختر میداشت میمت پیش پیغمبر سن میگه پیش پیغمبر خدا دخترم جوان شده آیا کدام جوان مسلمان کسی از که ازدواج نکرده باشد پیغمبر سن برک جوان میگه تو ازدواج کردی میگونه نیست نکردیم پای سر داری میگه من ندارم فرض نیست ندارم خیبر یک دست سوره قرآن شریف باز برای خانم زیاد بده این مهرت ولی حدیث ها موتو که مسلمانان سن تطبیق نکنیم خود مسلمان بود می کمید که امروز یک سنت پیغمبر رو تدبیق کنم حج ست شیده خداوند برم میتونیم یک سنت مرده این ای سنت مرده از بین دفتر دیگه چون شیطان سر ما غلبه کرده و کرده و کرده و بالاخره در هر جای ما رو شیطان معاصره کرده و خصوصان در آروسی در آروسی که در واضح هوتل که داره ای در سرش نشست که اینجا جای داخل شدن ایماندارا نیست اینجا باید زم کولوج باشه اینجا باید مرد تا پی دوسیل پیشانی خود بزنه و خانه خود مقابل فلم برداران نشان بتن این حاله تو پدر مسلمان و تو پدر با تقوان و تو پدر که از خدا میترسی و تو پدر که همیشه ذکر خدا را میکنی و تو پدر که همیشه قرآن میخانی و تو پدر که همیشه به دین مقدس اسلام ایمان داری در قسمت دختر چرا حکام خداوند متحال جل جلالوه رو تدبیق نمیکنی در اینجا چرا با شیطان هم بست میشی اگر دوصد نفر سهصد نفر در آرسی دختر تو بزور توسط تو نان نخور بر تو چی ایجاد میشه؟ والا میگن که خانی شوابش شاید چهار پنج نفر شیطان و مدیرای شیطان مخالف این برنامه تو برات یک یک چیز بگن که والا فلان میتگذرن لکن خدا از پیشوت خوشحال میشه پیغمبر خدا از پیشوت خوشحال میشه چون تو سنت پیغمبر و راه و روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمل کردی قیاس در قسمت تو که بعضی کسا که ما پيسارا میگیریم بعضی پيسارا پس بر خودش گیز میخورن برادر، ای کار, کار غلط است. ای کار نارواست. ای کار که خدا و پیغمبر خدا تایید نمیکنه، تو هر نفری بیچاره مجبور می‌سازی. میگم برادر، ال ما ضرورت ندارم که سیت پلیس کوی 2000 پگی یا 3000 پگی بخرم. مادرسم میخوان که یک سیت 400 بر خود داشته باشم. من خودم کاری کردن جور می‌کنم. تو من قرضدار ندصی، من خودم احیای استایش می‌کنم. من به خاطر از اینکه تو خودنمایی کنی بر مردو باز تو در محترق پر کرده بیاری باز ایجا کل اگه بیشینن باز یکی ایره نشان بتن باز ایره تو بنام خود خیلی خو دروغ گفتی ولکاز بگو عدو الله تو خود دشمن خدا شدی بیده این کار دشمن خداست از فیسه من برای خودم لباس میخوری باز میگیرم من خریده دروغ گفت دروغ شد نشد دل اگر پا گرفت سهیست و اون رو رفت یک و نمی از بازار همه چیز خرید وقتی که خرید اون علمه در مجلس بر مردم نگه که پدر آروس و برادر آروس فلانی و فلانی بر ازیر ای رو خریدن ای خریدن ای خریدن دروغ است و خوب کلی می که دروغ میگید و دروغ گوی دشمن خداست. هست تو مسلمان هستید و برای اولادت مهربان هستی ازو مصرفی که سر بچید میکنی حداقل یک مقدار خودت از جیب خود بکو اگر نمیکنی ظلم نکنک و آینده رو خراب نکن این بانه و این دلیل این دلیل شیطانی است و اینم با صراحت بر مردم بگیم که این دلیل شیطان است که در قلب انسان می‌پرده و انسانو فریب می‌ده که من استش 1 لک 2 لک می‌گیرم 1 لک 2 لک رو برام به خاطر از این که لباس بر تو لباس بخرم یا کالا بخرام اینجا حکم ازی چی است حکم ازی که این کار از این ناروا است این غلط است این زلم است این تجاوز است استش یک نفر با زور پول گرفتهن و با زور از لباس و کالا خریدان این کدام کتاب و کدام سنت و کدام قرآن و کدام دین الهی تفسیر هیچ دین nami و باز خود اینجا دروغ, دروغ میگی و وقتی که دروغ میگی و مردم فریب میدی اینجا جزای دروغگوی و دروغگویی کی هست دروغگوی دشمن خداست چون تو از پیسه خود نخریدی برای مردم میگی که رو مخریدی زنها باز اگه مجلساشان باشین او برش میگه که این از سیت فلسکو برش آرده باز از زنها بگه بازاشتی میکنه په لک خب. باز میگه اینه ای شجر کالا باز میگه خوب باز دیگه اتنی. درو بیا پس اگر اتبارد پسی خسون خیلی خدا نشان میگه اینوال خودش شخصیتی تا حیثیتی تا ایمان تا هم بایده میگه باید از باید نبری چونو؟ بخاطر از اینکه فرهنگ شیطانی رو تدبیق میکنی فرهنگ اسلامی رو باید تدبیق بکنی برای روز همه کار بس هست دیگرش الله با در جمعه این باب اخر میخواهیم سبحانکالله همه و بحمدیگر شبه اللہ اللہ استغفیر کماتون